مسئله 11 ضمير ناخداگاه در خدمت حافظه بخش اول ضمير ناخداگاه خویش را بکار اندازید همانطور که در رابطه با مسئله تکرار کردن نیز گفتم هرگز نباید سعی کنید موضوع یا متنی را در زمان واحد حفظ کنید برای اینکه متن یا موضوع در حافظه حک شود ضروری است که ریشه های بسیاری در مناطق مختلفی از ذهن و خصوصاً در زمیر ناخودآگاه بدواند و این کار تنها با صرف وقت عملی خواهد بود در واقع بخش مهمی از به خاطر سپردن و به طور کلی کار فکری حاصل کار زمیر ناخودآگاه است موادی که حافظه ما از آن شکل گرفته و به دنبال آن نتایج عمل کرده آنها در زمیر آگاه ما مشاهده می شود، در آزمایشگاه اسرارآمیز زمیر ناخودآگاه سازماندهی می‌شوند در آنجاست که حتی ساده‌ترین تخیلات نیز مانند یافته‌های خارق‌العاده آزمایشگاهی شکل می‌گیرند و در همانجاست که غالباً هنگامی که با توجه آگاهانه خود سعی زیادی برای حل مسائل بیهوده صرف کرده و پس از نیافتن راه حل مسئله را رها کرده اید و دیگر به آن نمی اندیشید آن مشکل حل می شود در این رابطه مثالی معمولی که می توان مطرح کرد جستجوی کلمات برای حل یک جدول است اکثر اوقات موقعی که سریعا نمی توان این کلمات را به خاطر آورد کافیست برای مدتی اندیشیدن به جدول را رها کنید تا راه حل آن را به راحتی بیابید. در این حالت، زمیر ناخودآگاه روی آن کار کرده است. من معتقدم خصوصاً در هنگام خواب است که افکار در زمیر ناخودآگاه ریشه می دوانند. به همین دلیل توصیه می کنم که هرگز درسی را برای همان روز مطالعه نکنید. بلکه بهتر است آن را بعدا در شب و یا بهتر از آن فردا شب که صبح روز بعد باید مطلب را در کلاس ارائه کنید مطالعه نمایید. غالبا فردای آن شب شخص از اینکه درس را کاملا میداند متعجب میشود. به هر حال اگر موضوع دقیقا هم به این صورت نباشد، حداقل مطالب بسیار ساده‌تر، روشن‌تر، مشخص‌تر و بسیار راحت‌تر برای حفظ کردن آماده میشوند. در این حالت، زمیر ناخودآگاه بدون آگاهی شما روی این مطالب کار کرده است. این روش نه تنها در رابطه با دروسی که باید آموخته شوند به کار میرود، بلکه میتوان از آن برای حفظ متون سخنرانی ها و نقش هایی که مثلا باید در تئاتر ایفا شود نیز استفاده کرد. همان گونه که در کتاب بیودینامیک مغز متذکر شده هم، نوع دیگری از این روش نیز توسط ماکس شروور مطرح شده است. یک شب فکری به ذهن او میرسد که به فرزندش کمک کند تا او بتواند شعری را حفظ کند. برای این کار او این شعر را در هنگامی که فرزندش به خواب فرو رفته بود برایش تکرار می کند. فردای آن روز او مشاهده می کند که کودک این درس را بدون اشکال تکرار می کند. وی که از این موفقیت بسیار خوشحال شده بود، دستگاهی را اختراع می کند که شامل یک ضبط سود، یک ساعت الکتریکی، و یک بلندگوی کوچک است که آن را زیر گوش قرار میدهند. در یک ساعت معین که خواب در آن عمیق است دستگاه خود به خود کار را شروع کرده و درس را که از قبل روی آن ضبط شده زمزمه می کند. نتایج به دست آمده در اکثر اوقات بسیار رضایت بخش بوده و امروزه بسیاری از هنرمندان از این دستگاه برای یادگیری نقش خود در خواب استفاده می کنند. این حالت به ای است که گویی مغز چون توسط سایر مشغولیات و نگرانی‌ها احاطه نشده است، دارای توانایی بسیار زیادی برای جذب موضوعات مورد نظر و به خاطر آوردن این مطالب می‌باشد. با این حال چون استفاده از این دستگاه کار فکری سنگینی را آن هم در شرایطی که مغز باید استراحت کند به او تحمیل می‌کند، لذا توصیه می‌کنم که ترجیحاً روش اول را به کار ببرید. بخش دوم ریتم و آهنگ آلفا را آماده ساخته و به کار ببرید به نظر می رسد که آماده بودن زمیر ناخداگاه در مدت خواب همراه با وضعیت خاصیست که در آن حالت مغز جایگاه آهنگ های الکتروانسفالیک آلفا یا دلتا می باشد در این رابطه متذکر می شوم که تغییرات الکتریکی سلول های مغزی در مجموع باعث ایجاد جریان‌هایی می‌شود که می‌توان آنها را از خارج جمجمنی زبط کرد این جریان‌های عملی دارای ولتاژی بسیار ضعیف حدود یک دهم میلی ولت و حالت نوسانی هستند که به همین دلیل گاهی اوقات اسم نامناسب امواج مغزی به آن داده شده است بر حسب فرکانس و به عبارت دیگر بر اساس تعداد نوساناتی که در هر ثانیه ایجاد می‌شود و بر اساس شدت آنها اساسا چهار نوع جریان الکتریکی مغزی وجود دارد که آنها را بر حسب ریتمشان، آلفا، بتا، تتا و دلتا مینامند. اولین گروه به استراحت حواس مربوط می‌شود. این گروه نوسانات منظمی از نوع شپ سینوس است که 8 تا 12 سیکل در ثانیه دارد. این حالت را می توان در یک فرد عادی در حال استراحت که از نظر روانی نیز در آرامش باشد و از وی کاملا رها شده و چشمهایش نیز بسته باشد مشاهده کرد. اما هنگامی که به این شخص دستور داده شود که چشمهایش را باز کند، این نوسانات از بین می رود. همچنین در صورتی که این شخص نوعی تلاش فکری انجام داده یا صدایی به اندازه کافی شدید به گوش وی برسد، و یا دردی در بدن او ایجاد شود نیز این حالت از بین خواهد رفت ریتم بتا در رابطه با فعالیت حواس می باشد که شامل نوسانات بسیار کوچکی است که فرکانس آنها سریعتر از ریتم آلفاست. چهارده تا سی نوسان در ثانیه این حالت در برخی افرادی که چشمهای خود را بسته نگاه می دارند به وجود می آید اینها افرادی هستند که تخیل ایشان مغلوب حس بینایی بوده و دارای تعادل ضعیف عصب واگ گردنی می باشند. شکل سوم فعالیت ریتمی بسیار تر بوده و وجود آن نیز ناپایدارتر است. فرکانس این امواج پایین و از چهار تا 7 نوسان در ثانیه متغیر است که ریتم تتا نامیده شود. این وضعیت معمولا مربوط به هیجانی ناخوشایند است. این حالت را همچنین در افرادی که رفتار تهاجمی دارند نیز میتوان مشاهده کرد. نوار الکتروانسفالیک بر اثر ناراحتی مختلف سیستم مرکزی اعصاب، نظیر سر، آنسفالیت ها، مننجوانسفالیت ها، مغزی و دنباله آنها، تومورهای مغزی و روانپریشی های شدید خصوصاً اسکیزوفرنی تغییر می کند. از سوی دیگر، الکل، کافئین، آرامبخشها و تعدادی دیگر از مخدرها نیز امواج آلفا را به صورت متغیری تحت تأثیر قرار می‌دهند. به عبارت دیگر، درجه این تأثیر بر حسب افراد مختلف متغیر است. اما تأثیر توتون واضحتر می‌باشد. تقریبا تمامی سیگاری‌های حرفه‌ای، آلفای خیلی ضعیفی را ارائه داده و در این حالت دارای فعالیت بتایی قابل ملاحظه‌ای هستند. تحقیقات باربارا براون نشان داده که در الکتروانسفالوگرام افراد سیگاری هرفهی را به علت ضعف در امواج آلفای ایشان به سادگی می توان از افراد غیرسیگاری تشخیص داد و از آن گذشته آلفای افراد سیگاری نسبت به اشخاص غیرسیگاری سیگاری سریتر نیز می باشد. این مسئله باید هشداری برای این گروه باشد تا در صورتی که مایلند از روش های به خاطر سپاری که ریتم آلفا در آنها وارد عمل می برخوردار شوند، مقدار مصرف توتون خود را کاهش دهند. ریتم آلفا در مراحل اولیه خواب ایجاد می شود، ولی مدت و اهمیت آن به تدریج کاهش می نوارهای الکتروانسفالیک در چند مرحله مختلف که آخرین قسمت آن به خواب عمیق مربوط می شود، نشان می‌دهد که در این مرحله ریتم بسیار کندی که مساوی با چهار نوسان در ثانیه و حتی کمتر از آن است به وجود می‌آید که نام آن را دلتا گذاشته اند. بیداری دارای ریتم تون و تشدید شدهای در جهت عکس مراحل متوالی است که منجر به خواب شدهاند. و اما در رابطه با موضوع مورد نظر ما چون در جریان خواب همان گونه که در فرازهای قبلی دیدیم مغز قادر است متنی را به صورت خودکار زبط کند امکان دارد که با ایجاد ریتم های آلفا و دلتا به صورت ارادی بتوان عمل یادگیری را راحت تر انجام داد. این دقیقا همان چیزی است که حدود سی سال است با استفاده از روشی که در زیل می آید، اثرات آن را مشاهده کرده ایم. در مرحله اول متنی را که مایلیت فرا بگیرید، نظیر یک سخنرانی، نقش تئاتر، درس، اطلاعات ادبی، تاریخ، زبان، جغرافیا و غیره روی یک نوار ضبط کنید. پس از انجام این کار، راحت روی یک صندلی نشسته یا روی یک تخت دراز بکشید و سعی کنید که حالت آرامش تا حد امکان کامل که در دو مرحله انجام می شود در خود به وجود بیاورید. این دو مرحله عبارتند است، عدم انقباز ازولانی و آرامش روحی در مرحله اول چند تنفس عمیق و آرام انجام داده و سپس بدون هیچ گونه تلاشی چشمها را ببندید. دهان را بدون آنکه لبها به هم فشرده شده باشند بسته و مشتها را نیمه باز کنید. به دنبال این اعمال، ازولات بازوی سمت راست و سپس بازوی چپ را از حالت انقباز خارج سازید. این کار را به راحتی می توانید در جریان تنفس انجام دهید، به صورتی که اگر کسی دست شما را بلند کرد و رها ساخت، درست مانند یک جسم بیجان به زمین بی افتد. هنگامی که دست ها رها شد، همین کار را با پاها و سرانجام، با عضلات شکمی انجام دهید. این حالت آرامش عمومی ازولانی باعث نوعی آرامش روحی می شود، زیرا فشار ازولانی، رایجترین نشانه انقباز روحی و حالت عصبی است. با متوقف ساختن حالت فیزیولوژیکی این وضعیت، حالت روحی را نیست که ارتباط بسیار نزدیکی با آن دارد، آرام خواهید ساخت. در دومین مرحله تمرین باید آرامش مطلقی برای روح ایجاد کنید. هنگامی که عضلات کاملا آرام شدند، به آهستگی و به صورت خودکار این جمله را تکرار کنید. من آرام هستم. آرام، آرام، آرام در این حالت در عرض چند دقیقه سر و صدای بیرونی به صورت ضعیفی قابل درک خواهد بود و اعضای بدن سنگین به نظر می و حساسیت نیز کاهش می یابد. مغز جایگاه ریتم آلفا و گاهی ریتم دلتا می باشد. در این هنگام باید زبط صوت توسط شخص دیگری و یا ترجیحاً توسط یک وسیله اتوماتیک که از قبل تنظیم شده باشد، به کار بیفتد. گفته ها باید به صورت آرام و فقط در حد قابل شنیدن باشد. در جریان گوش دادن، هیچ تلاشی از نظر توجه یا درک نباید انجام گیرد. در چنین شرایطی اطلاعات و خصوصا اطلاعات زبان مانند جادویی در مغز حک می شوند. و در واقع همان کار انجام شده ولی به صورت ارادی و با شناخت حالتی را به وجود می آوریم که در آن زمیر ناخودآگاه در جریان خواب وادار به کار می شود. بخش سوم روش تلقینی روش یادگیری که آن را تشریح کردم پایه و اساس روش تلقینی است که توسط گئورگی لوزانوف پزشک و روانپزشک بلغاری ابدا شده است. در این حالت دانشجویان در وضعیت آرامشی که تا حد امکان کامل باشد قرار می‌گیرند. سپس استاد همراه با پخش متنی از موسیقی کلاسیک دروسی را که مایل از تدریس کند و معمولا زبانهای خارجی هستند می‌خواند. در طول مدت خوانده شدن درس شاگردان نباید توجهی به مطالب گفته شده بکنند و باید منحصراً به موسیقی گوش فرادهند. گیورگی لوزانوف در این مورد می‌گوید دانش آموز از این طریق در عرض دو تا سه ماه مجموعه اطلاعاتی را میآموزد آموزد که یادگیری آنها معمولاً به دو سال تحصیل دانشگاهی نیاز دارد. این روش که سالهاست در در معروف تلقین شناسی در صوفیه به کار می امروزه در تمام دنیا و خصوصاً در آمریکا که شدیداً حالت تجاری به خود گرفته است گسترش یافته و حتی به شکلی که کلاهبرداری را تدائی می کند مورد استفاده قرار گرفته است. گیگیرلوس و جولیوس سگال که از سوی دولت آمریکا برای مطالعه در مورد تحقیقات سازمان بهداشت در آمریکا در رابطه با خواب معمور شده بودند اینطور میگویند. در حال حاضر تقریباً در تمام شهرهای بزرگ آمریکا، مراکز آموزش از طریق آرامش و از طریق خواب وجود دارد، که به شما وعده می‌دهند هر نوع اطلاعات متصور را به شما آموزش داده و شخصیت شما را بدون هیچ گونه تلاشی اصلاح و تقویت کنند. این وعده ها از یادگیری زبان فرانسه تا آموزش های تکنیکی نظیر موفقیت در تجارت، مبارزه با بیخابی، روان درمانی پیشرفته، درمان ناخن ناخونجویدن، اعتیاد به دخانیات و غیره را در بر می گیرد. گروه اعزامی می افزایند، در امریکا شرکت هایی که کارشان آموزش از طریق خواب است، میلیون ها دلار در سال درآمد دارند. ارزش این روش هر اندازه که باشد و علاوه بر موفقیت غیرقابل انکار روش تلقینی و روش هایی که به آن وابسته هستند، نظیر روشی که ما مطرح کردیم، تصور میکنم که سایر روش هایی که در این کتاب ارائه شده و نیاز به توجه، قوه درک، منطق و تدایی افکار دارند، نیز ارزش خود را حفظ کرده و نباید نادیده گرفته شوند. این روش ها در عین حال که به خاطر سپاری را بهبود میبخشند، در واقع برخی از استعدادهای ذهنی را خصوصاً در ارتباط با آموزش، تجزیه و تحلیل اطلاعات و تربیت رشد میدهند. دهند. به خاطر داشته باشید که میل به ایجاد پرورش، ضمن حضب هر گونه تلاش ارادی و تعمق آگاهانه در واقع به دنبال سراب رفتن است، بخش چهار روم. روشی اساسی برای به آوردن همانگونه که ام جورج دوحامیل از آکادمی فرانسه مطرح می سازد برای به یاد آوردن اسامی که ظاهرا فراموش می می‌توان از زمیر ناخداغاه یاری گرفت وی در این مورد می نویسد مثلا من می‌دانم که این نام وجود دارد با این حال برایم غیر ممکن است، در این شب تشییج جنازه آن را به خاطر بیاورم. وضعیت تقریبا ناامید کننده ای برایم به وجود می آید. تنها مختصری از این فراموش شده وجود دارد. یک حرف کافی است. این اسم به احتمال خیلی زیاد به یک آ و یا به یک سیلاب مانند جا خاتمه می آبد. ذهن سرسختانه روی این رد پای نامطمئن شروع به کار می کند. البته این کار ممکن است دو روز طول بکشد. من می توانم آن را رها کرده و بروم، بیایم، کار کنم و یا صحبت کنم، اما این کار دقیق و آرام همچنان انجام می گیرد. به صورت حاضر و بدون وقفه در اطراف این نور ضعیف و نوساندار و این ردپای نامطمئن، تصاویر و خاطرات دقیقی را که می توانند باعث روشن شدن آن شوند به صحنه می آورد. من مانند عکاس‌ها در فضای نیمه تاریک خاطرات و تصاویر را بیرون می‌کشم تا آن نام را به دست بیاورم. اگر اقدامات انجام شده منجر به شکست شود، فعالیت شدیدتری را در پیش خواهم گرفت. به صورت متوالی هایی را که بیش از سایرین خود را نشان می‌دهند، آزمایش می‌کنم. البته این کار در زیر ذهن من انجام می‌گیرد. گاهی اوقات نوری می درخشد و سیلاب دوم به سیلا اول می چسبد. من ابتدا جا را پیدا کرده بودم و ناگهان لوجا در اندیشه می درخشد. از این پس وقایه سریتر اتفاق می افتد. هنوز به دنبال صداها بوده و سؤال می کند و ناگهان تمام کلمه در ذهن پیدا می شود. این کلمه کالوجاست. چقدر ساده است. چگونه آن را فراموش کرده بودم. حقیقتاً باید این شکنجه واقعی را تحمل می کردم تا نام همکارم را به خاطر بیاورم. ولی پس از به خاطر آوردن آن باید به استراحت بپردازم. این پیروزی کوچک به من نشان می دهد که ذهن من هنوز به خوبی کار می کند. البته به شرطی که آن را بیکار رها نکنم. بخش پنجم چگونه می توان از طریق خود تلقینی به حافظه استحکام بخشید؟ اگر تلقین به معنای وارد ساختن یک اندیشه به مغز باشد، خود تلقینی چیزی جز همان تلقین که توسط شخص روی خودش انجام می‌گیرد نیست. این کار عبارت است از وارد کردن بازنمایی یادآورنده یا فرمول های بیان کننده ی تأثیر خواسته شده و حفظ آنها به مدت طولانی برای غالب ساختن و مشخص کردن آنها به دفعات، هر نوع بازنمایی در واقع سعی در تعبیر و تحقق پذیری خود به صورت عمل دارد. به دین ترتیب اگر تصور کنیم که در جریان مکالمه یا یک ملاقات حساس در یک لحظه معین صورت ما سرخ صور خواهد شد، ممکن است این حالت به سرعت اتفاق بیفتد. همینطور به یاد آوردن یک غذای بسیار مطبوع غالبا دهان را آب می اندازد. و البته در این رابطه مثالهای متعدد دیگری را نیز میتوانید بیابید. به طور کلی میتوان دو روش خودتلقینی را که خیلی متفاوت نیز هستند و به نوعی اصول آنها با یکدیگر تضاد دارد به صورتی که یکی انفعالی و دیگری فعال است در پرورش حافظه و به طور کلی برای رشد استعدادهای ذهنی نظیر اراده، توجه، اعتماد به نفس و غیره مورد استفاده قرار داد. اولین روش شامل قرار گرفتن در آرامش تا حد امکان طبق روشی است که قبلا شرط دادم و سپس تکرار یک فرمول ساده و بدون اندیشیدن به آن و در نتیجه بدون هیچ تلاشی جهت بهبود هر یک از استعدادهای ذهنی که در اینجا حافظه مورد نظر است این کار در شرایطی انجام می‌شود که بر اثر ایجاد آرامش دستها و پاها سنگین به نظر می‌رسد حساسیت فرد کاهش یافته و در یک کلام او احساس می کند از نوعی سستی و کرختی انباشته شده است. برای دستیابی به این امر و بدون سعی در تمرکز به چیزی که گفته می شود، با استفاده از لحنی زمزمه مانند، با حرکت لبها به صورتی که فقط بتوانید حرفهای خود را بشنوید، جمله زیل را تکرار کنید. حافظه من تقویت می شود؟ من راحت تر به خاطر میآورم، حافظه من تقویت می شود، خیلی بهتر می شود، حالا دیگر آلیست. البته فرمول های دیگری نیز به انتخاب شما می توانند مورد استفاده قرار بگیرند. ولی، فرمول انتخابی هرچه باشد، قبل از تکرار آن، همان گونه که متذکر شدم باید خود را در یک حالت آرامش انفعالی که باید تا حد امکان کامل باشد قرار دهید، تا زمیر ناخداگاه صرفاً و موضوع مورد تلقین را جذب کند و مسائل دیگری نظیر تجزیه و تحلیل شک و تردید که می توانند افکار انگلی و یا حتی مخالف را به وجود بیاورند با آن مخلوط نشوند. تمرین خود تلقینی خصوصا شبها درست قبل از خوابیدن توصیه شده است زیرا زمیر ناخداگاه کاملا در اندیشه تلقینی گوته شده و کار خود را در جریان خواب انجام خواهد داد. خاطر نشان می که تکرار نیروی تلغین را ایجاد می کند. بنابراین بهتر است دو بار در روز مثلا صبح و شب و هر بار به مدت ده دقیقه خود تلغینی انجام شود تا اینکه این کار هر دو روز یک بار و در یک جلسه چهل دقیقی انجام گیرد. این روش خود تلقینی که منحسرن زمیر ناخداگاه را برای رشد یک استعداد روانی آماده می سازد، در برخی شرایط با روشی که میتوان آن را فعال نامید متزاد است. روش مورد نظر شامل تصور کردن شخصی است که مایلیم به شکل او دراییم. البته باید تصویر این شخص خیالی یا واقعی را به صورت دقیق و مانند یک هنرمند در خود زنده سازیم. در یک کلام این روش عبارت از بازی کردن یک نقش است که در اینجا مسلما نقش کسی که دارای حافظه قوی است مورد نظر می باشد. برای این کار در مرحله اول باید با گذشته قطع رابطه کرده و ضعفها شکست و ناکامی را که در شرایط مختلفی بر اثر یک حافظه ضعیف دچار آنها شده اید فراموش کنید. به دنبال آن بایستی رفتار حالات و طرز اظهار وجود در زندگی معمول یا مثلا در جریان یک امتحان را به صورتی که آن شخص که دارای حافظه ای است از خود بروز می دهد در نظر بگیرید. و سرانجام بایستی این طریقی عمل، صحبت کردن، نوشتن و حالت اطمینان آن شخص را که در هیچ شرایطی به حافظه خود شکل نمی کند، در پیش بگیرید. به زودی یک رشته عادات و همزمان با آنها یک حالت روانی جدید در شما خلق می شود. به طور خلاصه، باید تمام زعفهای حافظه را فراموش کرده و تنها به شخصیت جدید اندیشید و در هر شرایطی مانند آن عمل کرد. این شخصیت سرانجام تحقق می‌یابد. بر حسب فطرت و شخصیت خود، یکی از این دو روش خود تلقینی را می‌توانید برای رشد حافظه خود به ببرید و در ارتباط با بقیه قضايا، آنها می‌توانند با هم مورد استفاده قرار بگیرند، زیرا متضاد یکدیگر نیستند. بخش ششم چگونه پیش از یک امتحان می توانید دروس خود را باسخانی کنید در روزهای قبل از امتحان به شما توصیه می کنم که ابتدا تمام مسائلی را که به نظر شما فهمیده شده اند باسخانی کنید و در مرحله آخر آنهایی را که تصور می کنید فراموش شده اند دوباره بخوانید. در تمام موارد به این شکل عمل کنید بدون باز کردن کتاب یا دفتر خود ترهیم منطقی از موضوع ترسیم کرده و نکات اساسی و جزئیات آن را یادداشت کنید. پس از انجام این کار، چیزی را که نوشته اید با متن درس مقایسه کرده و نکاتی را که فراموش کرده بودید، به دقت بنویسید. این یکی از بهترین روش هایی است که به شما امکان می نقاط ضعف خود را شناخته و آنها را اصلاح کنید. البته سوای سوال و جوابی که توسط استاد انجام می شود که به شما امکان می دهد نقاط ضعف خود را شناخته و آنها را اصلاح کنید. اگر باید مسائلی را بازخانی کنید که چندین ماه قبل مورد مطالعه قرار گرفته است و به نظر میرسد آن مسائل از حافظه شما مف شده اند، در این صورت سعی نکنید آنها را با نظم و ترتیب به خاطر بیاورید. ولی جزئیاتی را که به ذهنتان میرسد، حال با هر مقدار اهمیتی که باشد یادداشت کنید. از طریق تدائی افکار، زمیر ناخودآگاه نیز وارد عمل شده و این جزئیات خود به خود اجزای دیگری را به خاطر شما میآورند و آن اجزا نیز قسمت‌های دیگر را و غیره هنگامی که تعداد این جزئیات مختصر به اندازه کافی زیاد شد آنها را بر حسب یک طرح و نقشه منطقی گردآوری کنید در این حالت از اینکه اطلاعاتتان بسیار بیشتر از آن چیزی است که انتظار داشتید متعجب خواهید شد و اعتماد شما به حافظه و خودتان افزایش خواهد یافت و بالاخره در طول سال بر حسب شرایط خود را مورد آزمایش و امتحان قرار دهید به ترتیب هم حافظه خود را به کار خواهید گرفت و هم در صورت وجود نقاط ضعف به آنها پی خواهید برد در مورد امتحان شفاهی گاهی اتفاق می افتد که داوطلب دوچار نوعی استراب می شود که مانند عبرهای روی حافظه را پوشانده و تاریک می‌سازد. اگر اینگونه هستید، قبل از اینکه جلوی ممتنبی ایستید، چند حرکت تنفسی عمیق انجام دهید. به این ترتیب آرامش تدریجا به افکار شما بازگشته و اراده که برای لحظاتی از حافظه جدا شده بود، مجدداً بر فعالیت خود حاکم می‌شود.